بخش سوم گل دستش گرم بود در راکه بست بازی را شروع کردم همانجا توی حال روی زمین نشستم و چادر سفید را تا روی ابروهایم کشیدم به خانه یه بخت خوش آمدی چیزی نگفتم و به اطراف نگاه کردم خانه بزرگی بود ظاهرا سو اتق خواب داشت عروس کچلم قبول داریم. چادر را از روی سرم پایین انداختم. عروس کچک؟ پس کولاگیس به چه درد میخوره؟ موهای رها شدم را که دید سود زد و من فکر کردم بازی کردن با این مرد چقدر سخت است. از جا بلند شدم و گفتم آدم خر بشه عروس نشه مردیم از بس معدب بودیم. اولین جایی که رفتم آشپزخانه بود. میخوای همه خونه رو نشونت بدم؟ لطف میفرمایید. آشپسخانه. چشمس قیب میگین؟ خندید. در قابلمه یه روی اجاقگاز را برداشتم. گوشت و پلو بود. مادرتون گذاشته. ظاهرا رسم شب زفاف عروس خانم شام مفصلی بخوره. قابلمه را برداشتم. چرا که نه؟ با لباس پفکی عروس وسط حال نشستم. تکه گوش در دهانم گذاشتم. حالت تحوو داشتم. بسم الله. نوشه جان. لقمه دوم را برداشتم. بشقاب و قاشقم هست. معلوم میشه هیچ وقت با دست غذا نخوردی. خیلی کیف میده. خندید. خیلی ببخشین پیاز ندارین؟ این بار بلند و خندید بلند می شدم. شما فقط به این کجا هست من خودم میارم. عروس پیاز خورم حکایتیه هیچ وقت نونو پیاز خوردین؟ پیازی از سبد بغله یخچال برداشت و گفت همین خوبه؟ پیاز را گرفتم دست شما درد نکنه چاقو نمیخواد دوباره به حال برگشتی لباس پفکی عروس را پخش کردم. نشستم و قابلمه غذا را جلو کشیدم. پیاز را روی زمین گذاشتم و با مشت محکم روی آن کوبیدم. این کار را از داوود یاد گرفته بودم. شدت ضربه زیاد بود. پیاز له شد و آب آن روی فرش ریخت. خندید روبروی رویم نشست. خیلی ناشی هستی، معلوم میشه فیلم پارسی زیاد دیدی رمان زیاد خوندم، ضربه دست رو دیدی؟ یعنی باید بترسم؟ ما غلط میکنیم با عازم قوم در بیافتیم با هر لقمه پری از پیاز به دهان میگذاشتم حالت تحوام لحظه به لحظه بیشتر میشد اجازه هست؟ دست توی قابلمه غذا کرد و اولین لقمه را برداشت. پری از پیاز جدا کرد و به آرامی خورد. حالا بازی دو طرفه شده بود. خوبه؟ برنج از میان انگشتهایش میریخت. معلوم بود بلد نیست با دست غذا بخورد. وقتی دستم را داخل قابلمه کردم و تکه گوشت برداشتم او هم سر دیگر تکه گوشت را گرفت. کشمکش شروع شد. قاه قاه میخندید و گوشت را میکشید. گیج شده بودم چطور مردی که با آهنگ صدایش قبرها ویران میشدند و قصال سالخونه ها برپا میشدند میتوانست اینقدر قط باشد. داشتم جنگ را میباختم. نباید این اتفاق میافتاد. دست دیگرم را به کمک گرفتم و تکه گوشت را از چنگش بیرون آوردم. نب بابا گور برو دم هجله کشتی. ما دهاتی ها دمه هجله میکشیم یک آن خندهاش متوقف شد و من چهره همان مرد مقتدر را دیدم. ما به سنت ها احترام می و خندید. شکمم درد می کرد و حالت تعویم بیشتر شده بود. بلند شدم. لباسم را تکان دادم. ببخشید من کجا میتونم این جل علاق رو را عوض کنم؟ بفرمایید. پشت سرش شرکت کردم. در اتاق را که باز کرد جا خوردم. لحاف مخمل قرمزی روی یک تشک بزرگ پند شده بود. تمام دیوارها از نوارهای رنگی پوشیده بود. به هجله خوش اومدید. سلیقه خانم فاطمی. اینجا که مهده کودکه چمدانم گوشه اتاق بود. سنگین بود ولی نه آنقدر که نتوانم بلندش کنم. ببخشید میشه بیارینش اون اتاق؟ من که از مهد کودکم گذشته شما رو نمیدونم برگشتم و در اتاق بقلی را باز کردم یک طرف اتاق قفسه بندی شده بود و همه ی پر از کتاب بود چمدان به دست ایستاده بود به نظرم میرسید کمی گیج شده است لطفا همینجا بذارینش به گوشه اتاق اشاره کردم چمدان را گوشه اتاق گذاشت فرمایش دیگه ای نیست؟ در کیف سفید عروسیم را باز کردم و گفتم لطفا یه دقیقه صبر کنین؟ لبخند به لب جلو میستاده بود یک اسکناس پنجاه تومانی از کیفم بیرون آوردم دستش را گرفتم و آن را کف دستش گذاشتم گیج شده بود دستش را در دستم نگه داشتم و انگشتهایش را به آرامی بستم. قابلی نداره. اینم انعام شما. چنان بلند خندید که جا خوردم. خانم خیلی لطف دارن. اگه کار دیگه ای داشته باشن در خدمتیم. خیلی ممنون. میشه تشریف ببریم بیرون تا من لباس عوض کنم؟ کمک نمیخوای؟ سر را نگاه کرد. نه ممنونم تا اونجا که من میدونم این داماده که لباس عروس از تنش بیرون میاده شما یه بار این کار را انجام دادین اگه حوثی یه بارم بسته دستش را گرفتم و به بیرون اتاق هدایتش کردم هیچ اعتراضی نکرد وقتی در را میبستم گفت قفلش خرابه گفتم عیب نداره بلوز و شلوار صورتی پوشیدم. کشمکشی که با زیپ لباس عروس داشتم حالت تعویم را بیشتر کرده بود. در پس ی ذهنم مدام یک کلمه تکرار می‌شد. بشکن. بشکن. بشکنش. موهایم را شانه کشیدم. در تمام این مدت صدایش را می‌شنیدم که آهنگ شادی را با سوت می‌زد. در اتاق را باز کردند. قابلمهی غذا را جمع کرده بود و لباس راحتی پوشیده بود. دستم را گذاشتم روی شکمم و گفتم: ببخشید، توالت کجاست؟ خندید و گفت: کلمه بهتریم هست. لطفاً عجله کنید. در را باز کرد و گفت: گوشه ی حیات سمت چپ. نگاهش کردم. خندید. باید بازی را ادامه میدادم. سش را گرفتم و کشیدم. گفتم ما دهاتی ها اعتقاد داریم تا زهروس نباز شب تنهای جایی بره. آل می زندش. بلند و پرسه خندید در توالت را که باز کردم گفت متاسفانه لامپش سوخته. در را نیم باز گذاشتم. گفت بمونم. نمی جوابش را بدم. همه ی آنچه را خورده بودم با سر و صدا بالا آوردم. شنیدم که گفت گل؟ گل؟ چیزی شده؟ حالت بده؟ اولین بار بود گل صدایم می گفتم خوبم. گیج بودم. دست و پایم می لرزید. با این همه وقتی از توالت بیرون آمدم دستش را گرفتم. گفت داری می حال که شدیم همانجا نشستم گفتم ببخشید یه بالش و پتو به من بدین به شتاب برایم بالش و پتو آورد کمک کرد دراز بکشم موهایم را نوازش کرد دست روی پیشانیم گذاشت و گفت میخوای بریم دکتر ابروهایم را بالا بردم کاسه چشم پر از اش بود نمیخواستم بازشان کنم دستم را در دستش گرفت. فشار داد و آن را بوسید. تو را روی سرم کشیدم و چشمهایم را باز کردم. بدون هیچ صدایی اشکهایم جاری شد. صدایش از آشپسخانه میآمد چیزی را به هم می زد. حالم بهتر شده بود. با دست صورتم را پاک کردم. گل برات نباد داغ گوشه پتو را بالا زد، لبخند زدم، بلند شدم، نشستم، لیوان نبادداغ را گرفتم. از روی میز اصلی گوشه حال جعبه دستمال کاغذی را برداشت و گرفت جلو. گفت چشماتو پاک کن، من عهد کردم گریه نکنم. معلومه، تمام آرایش صورتت قاطیپاتی شده. دستمال برداشتم و صورتم را پاک کردم. کشم هایم را باز کردم نمیدانستم کجا هستم همه جا تاریک بود به وضوح صدای استقاسه می شندم. وقتی همه چیز را به یاد آوردم سعی کردم بدانم صاحب استقاسه چه میگوید گوید بیفایده بود آهنگ کلمات دردناک بود اما کلمات مفهوم نبودند خودم را با آهنگ کلمات سپردم سرم را زیر پتو کردم و سعی کردم آرام بمانم نتیجه رضایت بخش نبود کاسه چشم هایم پر از عشق شد باید کاری می کردم نمی عشقم را ببیند پتو را کنار زدم در حال را باز کردم و وارد حیاط شدم از دوردست صدای ازان می‌آمد. نسیمی خنک صورتم را نوازش داد دستشویی را بلد بودم وضو گرفتم. میلی عجیبی به خواندن نماز در آن هوای لطیف صبحگاهی داشتم. برگشتم. شنیدم از زالین. چادر عروسیم را سر کردم. پتویی را که شب قبل رویم گرفته بودم برداشتم و دوباره به حیات رفتم. پتو را روی سکوی بزرگ جلوی خانه پهن کردم. سنگ کوچکی از میان خار و خاشاک های باغچه برداشتم. نمیدانستم قبل کدام طرف است. سعی کردم موقعیت خانه را با موقعیت مدرسه بسنجم. به سمت در ورودی حیات ایستادم. حال خوشی پیدا کردم. مدت ها بود چنین حالی نداشتم. نمازم که تمام شد همانجا نشستم. ستاره ها تک و توک در آسمان بودند. و سپیدی از کناره های آسمان شروع شده بود قبول باشه برگشتم پشت سرم نشسته بود من به تو قبته میخورم چیزی نگفتم احساس کردم برای شروع بازی وقت مناسبی نیست بلند شد رفت خودم را عقب کشیدم و به دیوار تکی دادم صدای جیگ چند گنجشک را همزمان شنیدم. باغچه پر از درخت هایی بود که نمیتوانستم در آن گورگومیش صبحگاهی از هم تشخیصشان بدهم. در باز شد و با یک پتو بیرون آمد. دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت: هوا سرده. پتو را روی شانه های من داخت. خودش کنارم نشست و بخشی از پتو را روی شانه هایش کشید. صدای کا بیشتر شده بود. هر دو ساکت بودیم. گفت چه هوایی؟ گفتم "یس". به باختی خانه خودمان فکر می کردم. به داوود و مادرم و به شبی که بدون من گذراندند. احساس کردم چیزی روی شانه چپم سنگینی می کند. سر او روی شانه بود و چشمهایش بسته بود. خواستم شانه را کنار بکشم اما نتوانستم. چشمهای بستش به او معصومیتی کودکانه داده بود. احساس کردم بقای شکل موسیقی خود را از دست دادند. همه چیز جدی و انگیز بود. من آنجا در خانه مردی بودم که در دلها هراس میافکند. و حالا سرش روی بود نفسهایش منظم و یک نواخت بود واقعا خوابیده بود فکر کردم نکند تمام شب به خاطر من بیدار منده باشد هوا روشن شده بود و من موهای سفید او را در سر و صورتش می دیدم نوزده سال اختلاف سن پدرم بود یا شوهرم معلم یا دوستم ناجی یا دشمنم، هی در کجا بود، سعی چه شده بود، با صدای زنگ در از خواب پرید، قط شناسانه به رویم لبخند زد، پتو را رو روی شانه مرتب کرد، داخل حال رفت، بعد از لحظاتی در حالی که کمربندش را محکم می کرد به طرف در حیات رفت فکر کردم قدرت لوازم خاص خودش را دارد. سگکی کمربند هم جزئی از قدرتش بود. با قابل ای در دست بازگشت. عروس خانم پاشو که کاچی رسید. فهمیدم مادرم پشت در بوده. پتو را از روی شانههایم انداختم. جلوم ایستاد و گفت؟ رفت. چرا نیومد تو؟ یادت رفته ما توی هجله هستیم خندیدم مسخره است چی مسخره است عرف همه چیز بفرمو کاچی عروس خانم از روغن حیوانی متنفرم خب تو نونپنیری پنیری چیزی بخور دیشبم چیزی نخوردی سفره را پهن کرد بشقاب پنیر را روی سفره گذاشت، شکرپاش و قاشقهای چای را کنار بشقاب گذاشت و من به ناشتایی که در خانه مادرم میخوردم فکر کردم. به نانی که لایش مغز گردو بود و به کاسهی که تهمانده غذای شب شب آن بود. مادرم نان را روی چراغ خوراکپزی گرم میکرد. خودش نان خالی میخورد و میگفت آدم گشن سنگ میخوره. داود روغن نباتی را رو روی نان گرم شده میمالید و میگفت مذهی نون روغنی مرده ها رو میده. مادر نون روغنی مرده ها را آخرین شب جمعه هر سال با سیاه دانه میپخت و بین همسایه ها پخش میکرد. وقتی خودش تکی از آن را میخورد، زیر لب فاتحه میخواند بعد طوری که من و داود بشنویم میگفت خدا رحمتت کنه. رفتی ما رو بی کس و کار اشتی نور به قبرت بباره. تخم مرغها ها را پوست گرفت. زردی تخم مرغ شل بود گفت بخور تا جون بگیری. تکه این برداشتم. تخم مرغ را درسته وسط آن گذاشتم. آن را لوله کردم و گاز زدم. احساس کردم به عمد نادیدم میگیرد. استکان چای شیرین را گذاشت جلوم، سر قابلمه ی را برداشت، روغن روی کاچی را کنار زد و بشقابش را پر کرد. این کاچی شما خیلی شبیه حلیم ماست، فقط ایبش روغن زیادشه. باید دوباره بازی را شروع کنم، استکان چای را بر می دارم. چای را در ننبکی می ریزم و آن را هورت می کشم. سرش را روی بشقا کاچی خم کرده و آرام کاچی را به هم می زند. میلی به خوردن ندارد. صبحانه را که می خورم بلند می شوم. به اتاق کتابخانه میروم. می روم. عنوان کتاب ها را می بینم. یک دوره کامل تفسیر نمونه و علمیزان کنار هم چیده شدند. کتابها بیشتر دینی و کمتر سیاسی هستند. چند جلد کتاب نیز درباره آبیاری قنات ستسازی باغداری و خاک در یک ردیف چیده شدهاند حدس میزنم مهندس کشاورزی است کتاب ازدواج از نظر اسلام را برمیدارم زیر بعضی سطرها با مداد خط کشیده شده است نویسنده درباره ضرورت ازدواج و حفظ بقای نسل انسان پرگویی کرده است حسلهام سر می رود کتاب را میبندم چشم گردانم شاید رمان یا داستانی در میان کتاب ها پیدا کنم کتاب لاغری پیدا می کنم. روی جل سفید کتاب نوشته شده چگونه میمون انسان شد هنوز کتاب را باز نکردم که در چارچوب در ظاهر می شود. اجازه هست؟ بفرمایید روبرویم می نشیند. شما سرکار نمیدین؟ دین؟ هنوز شلوادی را که صبح موقع زنگ زدن مادرم پوشیده به پا دارد. میخوای تنها باشی؟ چیزی نمیگویم. ظاهرا بازی را زودتر از من شروع کرده است. هر دو سکوت میکنیم و هر دو کتاب های داخل قفسه ها را نگاه میکنیم. نمیتوانم فکرم را متمرکز کنم. میگوید کتاب خونم چطوره؟ فقیر؟ فقیر؟ این همه کتاب منبع و درجه یک کتابخونه ای که رمان و داستان نداشته باشه فقیره میخندد مجهزش میکنم شما جان بخواید کتاب چگونه میمون انسان شد را ورق میزنم نه یک بار چندین بار سرم پایین است اما نگاهش را با لبخندی تمسخرآمیز روی چهرم احساس میکنم دیگر میلی به بازی کردن ندارم سرم را بلند می کنم و می گویم، چرا من؟ نفس راحتی می کشم. انگار طرح این پرسش و جواب آن همه چیز را حل می کند. همه مسائل اختلاف و دشمنی ها را. منتظر این سوال بودم. پرسش دیرهنگامیست. این اینطور نیست؟ ماهی رو هر وقت از بگیری تازه است. اگه وقتی ماهی رو بگیری که گرفتن و نگرفتنش برات فایده ای نداره چی؟ اگه نداشت نمی مگه جواب شما تغییری در سرنوشت من ایجاد میکنه؟ شاید بکنه؟ پس بگو. سکوت میکند. سرش را به دیوار تکیه داده و به سقف نگاه میکند. سیبک گلویش برجسته شده است. احساس میکنم سرنوشت من؟ آینده‌ی من به جواب او بستگی دارد. بیقرار می می‌شوم. موهایم را دست می‌کنم و روی شانه ی راستم می‌ریزم. نگاهش را از سقف می‌گیرد. چشمانش میدرخشد. احساس می‌کنم قطره اشک گوشه‌ی چشمش سرگردان مانده است. خودت چی فکر می‌کنی؟ فکر من به انتخاب شما چه ربطی داره؟ به انتخاب من ربطی نداره اما به قضاوتم ربط داره. احساس میکنم پرسش عظیمی که تمام این مدت مثل یک ورد مقدس در ذهنم تکرار شده است با این سوال و جوابها کوچک میشود دلم نمیخواهد آن ورد مقدس به کلام پیش پا افتادهی تبدیل شود شما من را انتخاب کردین چون با شما مخالفت میکردم بلند می خندد. شما میخواست منو منو بشکنید غرورم رو، اندیشم رو، فکرم رو خیلی بچگان است. نه هنوز همه چیز رو نگفتم. سرتکان میدهد می‌دهد. یعنی بگو. شما منو انتخاب کردید چون از همسر اولتون دار نشدید. چون فقیر بودم. چون ادعا داشتم. چون زیبا بودم چون مفت به چنگم می آوردید. چون ایثار می‌کردین و مردم طور دیگه‌ای بهتون نگاه می‌کردن چون بغض گلویم را میفشارد. عشق تا پشت پلکایم میآید آید، دستایم می کتاب را پرت می کنم، موهایم را جمع می و پشت سرم رها می کنم، سرم را به دیوار تکیه می و چشمهایم را می بندم، صدای تیک تیک ساعت دیواری را می شنوم، صدای نفس‌های او را هم می شنوم، من به این دلیل تو را انتخاب کردم که دوستت داشتم، سرم را تکان میدم میخندم و هشکایم جاری میشوند دروغ قشنگیه خیلی قشنگ دروغ نیست دختر از تو زیباتر و فقیرترم در این منطقه هست خب چرا سراغ اونا نرفتین؟ چون هیچ کدوم به باهوشی تو نبودن من از زنای کودن متنفرم ولی من با تو فرق دارم من و تو به اندازه اختلاف سنیمون با هم اختلاف فکری هم داریم. داستان شیخ سنان رو شنیدی؟ بله، از خود شما در کلاس یقیدتی. اون داستان رو در اون زمان فقط برای تو میگفتم. نمیدونم چرا نفهمیدی. ولن شبا. احساس میکنم بازی خوردم. دلم میخواهد سرم رو محکم به دیوار بکوبم. این سوال جواب ها نه تنها آتش خشم درونم را خاموش نکرده است بلکه آن را تیزتر کرده است. از اتاق بیرون میآیم. دستهایم رو مشت می و به دیوار میکوبم. فریاد میزنم لعنت به فقر. لعنت به بی کسی لعنت به نداری لعنت به تو لعنت به من لعنت به این انقلاب لعنت به کتاب لعنت به هیدن لعنت به جنگ لعنت به ماهی سیای کچلو لعنت به شریعتی دستهایم را میگیرد و قلم میکند سرم را روی سینهش میگذارد و آهسته میگوید آروم باش خواهش میکنه دستم را از دستش رها می کنم و محکم به دیوار می کنم. فریاد می زنم متنفرم از تو از خودم دست هایم را محکم می گیرد نفس نفس می زنم. تمام خشمم بغض می شود و در گلویم می ترکد سرم را به سینهش فشار می دهم و های های میکنم می کنم.